بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله و محمد عقا عقا و عاله قیبین و المعصومین و دعا تدائم و و مرحوم شیخ در این همی که در محطه درد داشتن کلمات محدث استرابادی و بعد از مرحوم محدث استرابادی مقدار کلمات دیگه شده و شیف از عبارت محدث استرابادی اینجور احمیدن رسول اخباری ها که اگر ترد از قیل از کتاب ها که سنت باشه خوبجت نیست شیف اعتراف سرمه که نشون و جرد ازادیست این محدث درست است این خلاصه بحث مرحوم شیفه و عصد آلیمی که بر از شیخ با مردموشه ایت موافقت کردند و کلام محدث استرابادی رو رد کردن و فیضی هم توجیر کردن که محدث استرابادی قادره که قرد پیدای نمیشه نایی که قرد خون اینا no. تکاثیرش بذاشت و توضیحاتی که ما عرض کردیم و خلاکی این دست میشد یک مردوم شیخ میگه فیدا شد، این, قطع خود جد دلوقت دلوقت دلوقت. این بحث پیدا شد نمیشه میگیم بحث حکمت نیست نه هم مشکل نداره این بحث بودش طولانی مفصل که نکنی. از که نهی بود که تکرار نکنیم اکثر این از زمان شیخ بیرکره مشهور اینه البته خیلی هم مشهورن صاحبها اعتقاده که نری الخرج ممکن اینطوری سوقی عزتی باشه و قادر بییشه یه بحث اینه ور بیشی بحثا ما موجز و مختصر در دو کلمه گفتیم اون نفس این است که برد عین کشم خجیت مسابقه با خاشفیت اگر بکنون خجیت یعنی خاشفیت و میشه اگر خجیت دیدر کشم دو تا کنیم مختصر که کنیم برای این که، برای این مختصر برای برای رو مختصر آیا مثل امو آی مثل و آزی ها خجیت و عینه ها خاشفیت میدونن یا ذاتی یا ذاتی باید بحثی کنیم پس اگر کاشفیت اضافی ذاتی کن گجیتون میشه این مراد اونا آنه ما اشکال کردنیم گجیت تابعه کشم کاشفیت زیر بناب گجیتی اینست لیکن اینکه که مدار اون هم باشه نیست و توضیح مفصلی در اینجا از گذشت چون ما ارز رو به دو لحاظ میشه نگاه کن یه لحاظ معنی ترجز یه لحاظ به لحاظ لزوم عمل علا سبغه چون من توضیح کافی عرض سرم وقتی میشه چون اون نکته اینه که از جل و حکام و قانونی دو تا یک قرضه ادنا داریم قرضه ازنا یعنی تا عقلیت باقزی بشه یک داریم یعنی وقوع در خاره. وجیت هم به این دو لاواز وارد کنند تونیت به لاواز قرض اجنا به لاواز قرض احشا این توضیحاتش بوده دیگه تکرار نکرم بکنم و ذاتیات رو در هر دو مگاه قبول نکرده نه در قرض اجنا نه قرض احشا و خلقی در مسئله توضیحات مختلفی بود که تکرار باشه یک من در آیا شارع می تواند یا مقنن یا حتی پدر با بچش بده اول اینکه اگر مسئله رو در نظر بگیید چنین اگر بحث یا شده از این راضیه فلان ای که فلانی گفت و غلط که این نداره مشکل ما اینه بحث از بیهوده چن بحث به من هیچ مشکل نداره و یک مسئله عقلایی هم چیز سختی هم که این مسئله ای این راضیه من مطلب دوم این که مردم معاصر اسلام چی میخواد خب مفصل متعارف شدیم در اصول چیزها های عنوان بردرسی کردیم و از حقیاتش داده شد که دیگه تباید تکران نه مسئله ثبوت شیخ قدس الله و نفسه بعد از کلامه محدثه استرابادی مسئله رو از بردی از محدثین نفت کرد در تعارض عقل و نقل البته شیخ متعرض روایاتی که در مذهب عقل است و فترت است من الله است پس این ها چاکمان این روایات رو اجمالا دیروس بس ملازمه متعرض شدیم دیگه میخواهم بگم که بین کلمات باشه و جوابش چون طول یه بود که بعد از اخباری ها بین و شیخ هم نرم که پیش من نیست چون هر شیخ هر مش 80 90 مطالبش به واقعا خیلی از عجایب و شگفت تو خانه بسیار کوچیکی باشه شیخ هم مسادری که داره شده خیلی کم بوده الان محکیه با قول ما ها الان ما خوکیه کل ایشان بگه خیار نداشتن کتاب از و مروم آشتیانی و ادهی از اون کتاب ادهی از موازه نرده مثلا مسئله حفظ حفظ یعنی که آقایم در کلام دارن گفتن حفظ معبول نیست چون الباقل لای نقل با هم آقا و علیه بس من اگه فرس به این با دوستان نسل رو این دیگه عمل نمیشه ممکنه مثلا خدهان اقاب نکنه اما حفظ نیست. از اون ظاهر برده از آیات هفته این در حسنا دویوزهه به نفسه ظاهرش هفته با نه روزه نمیشته یه حفظه مورد مرحومه اون آهال 319 سنی ایشون نه روی کردن از مواردی که بگیره و سعی کردن سوچیادی بشه اصلا خدمتتون که این بحثیه بحثی سال 7 باشه و چند تا مورد دیشون فرنده یه بحث بسیار قدیمی است تآرز بین علم با دین تآرز بین علم فلسفه با دین که خیلی از مکاتب دینی ما داریم فلسفه رو اعتراف نمیکنه اصلا این ما عالم هست فنا یه بحثی که آیا فلسفه قدیم مثلا فلسفیان با عنوان قدس الله نوشته نوشته‌هایی که الان وجود داره هم خب در همین کتابی که در مرد سقراط هست که قراره بحث کنه تشریح می‌کنه سقراط قائل به بر در بیاله دنیا حالا این واقعا حظ سقراطی که هیچو قالب بوده نبوده یه بحث خاص خودشه اتن. و این اختصاص بین حظ و حطش در موردش توی چه که به له وحشتناکی که نسبت به مسائل کل ادیان و چه خصوصاً به اسلام اخیارات فراوانی هم به لحاظ علمی هم به لحاظ هم به لحاظ فرزند فرزند مثال طوفان نون، اون صورتی که آمده نگه نیستند شغل سریعی می‌آید. اول آخر نمی‌خواد می‌گی چی؟ که این مردان نیستیم. مثال هفت و این هر رو دیدم در از این بزرگان مسیح موسی درن که پیامبر است. معلوماتی که راجع به این سازره بسیار معلومات بسیط است و این مال بعضی از مسیحایی بوده که پیغمبر باش برخورد کردن اونا معلوماتشون معلومات دقیق نیست از این کتاب اناجیل اربعه و میراث های دقیق مسیحیت در شده از, از این حساب بکنیم تا آخر خلو البته خود مسیحیت خودش هم مختلف می‌یری الان د زیادی از یاد زیاد نسبت از محققینشون در اصل وجود عیسی مسیح شخصیت دارن یعنی این ثابت نیست در اصل این که این انجیل مال مختار باشه این ثابت نیست مال لوقا باشه الی آخر بحثی مفصلی هست این قبل ده موردی که ایشون خطی در نیست و این ممان مواضع مواضع طولانی است در به اصطلاح خودش تعارض بین علم و دین تعارض بین فلسفه و دین تعارض بین جامعه شناسی انسان شناسی با اینا صحبت یکی دو تا و ستا و تا و تا که ایشون در این توردار نیست و اینا خب با محل خودش جواب داده بشه ادیش و از نظر عینی ثابت بشه که از علم هست یا نه از نظر فلسفی ثابت بشه ادیش و با نظر دینی ثابت بشه و یکی حساب خاص خودش داره یعنی ما وقتی ایشون فرمودن خاص نمی‌شه جواب‌های خاص خودش شبهات بیاد شده و اونها با جای خودش جواب داده بشه چه بحث وصول ما همجاش اینجوری نیست ما قرار و اصلا این در اون زمان می که ایشون در فرع شهر وافی مردم سید صدر بودند بعدش یه بالاتر و اصولی‌تر و عمیق‌تر و در شروع مختلف و در جوانب مختلف مطرح شده که نیاز به شهر خودشو داره اینا هم راج می‌بینید یه مطلبی رو مرحوم استاد فرموده بودن که نهی از در مطال عقللی مننگ هم مادهشون اند به شخ هم داره اما فکر می کنمشیه نشد بکنم. فکر بکنم شیخ میگه اون رو هم من با سازی دیشب نگاه بکن درسه ما پیش فکر کنم شیخ اون روایات رو خند بکنیم من استسازی و اقلانی گرفتن که اقل میگه در مطال و عغلی نکنه از وااض نیست مال که, مستادی که, مستادی که عقلی واضح این راجع به این ملبشه که توی کشید خ شدی پ مثر که هم به بی... از این مسئله مرهوم و استاد بعد از این بحثی که الان ارز شد البته عرض کردم اون خلاصه بحث مرهوم محدث استرابادی هم. که ما در شریعت باید برگردیم به کتاب و سنت و هر دو از راه اهل دفت این مقدر بهشون درسته موانی قطعی ارزهاب ماست بلی که من دیروز ارز کردم باید نیست ما در کل قوانین رو بگیم خوب دقت کنیم اختصاص به شریعت مقدسه مثلا کل قوانینی که به اصطلاح ما داریم تر اون قوانین تر اروپا آمریکا یا پونچی اصلا نمیشه کسی با عقل خودش با فکر خودش با قیاس مطلبی رو نسبت بده طبیعت اعتبارات قانونی اینه یعنی اعتبارات قانونی جز اطلاع به مصدره خود قانون راه دیگری نداره با قیاس و خیالات و اوهام و اصول عملیه و این جور چیزا نمیشه حساب اینا ما دیروز اضافه کرد در کتاب استاد برگردیم به بحث ایشان در صفحه در جلد 47 این تسلسلی که برای آثارشون گذاشت جلد 2 مصباح و اصول این چاپ جدید از صفحه 65 اون اگر مراجعه فرمودن از صفحه 65 تا صفحه هفتاد و سه چند تا از فروع رو زر کردن که انسان فیاد میکنه انسان علم پیدا میکنه و مخالفت با او جایزه خیلی حس نکردم جاش اینجا باشه حالا بعد از علم اجمالی می گفتن شاید بهتر باشه تو خود مرموم شیخ هم آده به نظر تو علم اجمالی بکنه این فرو هست تو رسائل میدونم اما به این فروع مناسب بود با بحث علم اج تا انگار که منم یادم رفت بعداً بیاریم که ایشا تو ذیل علم اجمالی بخونیم این فروعی رو که استاد از صفحه و تا 72, 72. فرمودن ظاهراً ملحق به فروع علم اجمالی شده تو بحث علم اجمالی بیاریم ان شاء الله تعالی اینا راجعی ببین یعنی اول وقت مراجعهش داشت مثلا یادمون رفت و مثلا رفت فوت شده نه که ما در تأخیر نباشیم از صفحه 73 ایشان وارد بحث علم اجمالی میشه که یکی از اندیشه‌های مرموم چکنسالی در رسائل هم هست در ایکی از وقتایی سیار معروف که دیگه ایشون تا بحث زن همین کلام ایشان تو علم اجمالی است که مواسط قرم با, با مواسط علم اجمالی تمام کنم تقریب ای که ما همیشه داشتیم از کدم برای این که آنون کارشون واضح باشه پیشون فرمودن که بحث در دو جهت یکی ثبوت تکلیف یکی ثبوت تکلیف و در مقام من این چون توضیح خودم ارزم کنم فقط اشاره ایم. در مقام ثبوت تکلیف هم همچنان که شیف فرموده است باست در وجود موافعات قطعیه است و اخرى در مخالفت در قرمت مخالفت قطعیه یک مقدمه ای هم ایشان دارند بعد از اون مقدمه یک مقدمه کوچیکی که هم راجعه به این ترقبه بیدی خود هست و ترقبه که بعد وارد شدن در خود بحث از صفحه 75 رفتا برم از که در این کتابی کن روز و عنوان نداره مثلا شما خواهی بفرمید بین که از خودتون عنوان ببین این اولش ترخ نزایه تصویر محل نزایه یک صفحه خودهی در تصویر محل نزایه بعد وارد بحث نشد هر سنن همه شد که ایشون فرمیدن و دیگران هم فرمیدن را از ایمه طال شنید به لغاز مقام ثبوت تکلیف اخرا به لحاظ مقام ثبوت تکلیف مقام ثبوت تکلیف اصطلاحاً انکسار میگه مقام انکسار انسان علم ایشو میگیره متعارف اینه که اول این کلمه علم اجمالی رو شرح بدن وقتی که استاد شاپن متوجه خود کلمه علم اجمالی رو شرح نعد حالا من چون مغایرن که روی مقالی تو جلو برن پس الان این کارتون اول مطلب ایشون رو اجمالاً توضیح میدن، نه مطلب ایشون خود مطلب. چون بعضی مصالی میگنه از می در حساب ایشون من اول مطلب کتابو توصیف کردم بعد وارد اون بخش دوم میشیم که تفسیر علم اجمالی باشه. اینها به با عنوان تحلیل محل نزاع. این عنوان به تحلیل محل نزاع. کنم همچه که ایشون فرمودن، صراحتن در صبغه تکلیف. اصلا من میدونم یا نماز در من واجبی یا صله. اینم خودش صبغه تکلیفینه. از باسته عهده همه به اینه را تشکیس نمیدن میدونم به دیگه از اینها تعلق بگا کرد یا به صلات یا به صدر اون وقت در سبوز تکلیف بحثی که در علم اجمالی هست همون بحث معروفه بحث تازه اینیست بحث معروفه اینیست آیا اصول ترخیصی در اصلاف علم اجمالی که آنیم چون در نه که بحثشون اصول چون در اصلاف شبهه بردی اصول ترخیصی مث جاری میشه آیا در اساس علم اجمالی هم جاری میشهه؟ هممثل بنده حسثابو تث یا باشن تا چند چندبار تغییرر کردیم من یک تعر خاص و خودم داشتن تعبیران بخواال نمیشخال بعدا بعدم میاریم به اصطلاح معرووب ما ازخر که این اصول ترفیسی این ساعتاتات برای یا حتی استص در جایی که ترفیسی باشه خلاف علم باشه آیا این محل جریانش منو مثلا کلش و که حلال حتی تعلم آیا این جریانش منوت شیل در این همجهه در شیلی در موضوعات آیا به جایی که اطراف شبه باز باشه یا جایی که اطراف شبه بسته است اونم شامل میشه این اصطلاح باز و بسته رو من به جای علم ایجمالی و شبه بدیه رو کار بودی ما در شبهه بدیه میگیم احتمالیست که بازه مثلا احتمال اصلا این اونی که نگست این احتمال باز اسمشون باشه احتمال بسته رو این احتمال بنده هم تا جایی تکاره همی احتمال بسته رو اونجایی که نمیگی یا این نگسته یا این نگسته این احتمال بسته کل شیعه این لکه حلال در احتمال باز جایی میشه مثلا من نبیزم هایا فلسومی اوشتن خوردن فلان مثلا من اون صدقه بر من واجب یا نماز نزدیک کردن یا نکردن اصلافو برای رجوع می اما اگر علم پیدا کردم، اون احتمال بسته شد این پیدا کردن یا صدقه نهست کردن یا نماز الان به نوشته خودم مراجعه می کنم دفترم نوشته لیکن تونتون نوشته صدقه است یا صلاح مردد شده موقعی کلمه صدقه و صلاح می دوست صلاح بر من نوشتن نیم کردن. تو نوشته خودم هر ثاکه با عدل این که اون کلمه صدقه رو صلات نمیشو خون نمیفهمم صدقه در واقع واجب یا سنت اینو ما استثن کنیم این احتمال بسته آیه میگه که این میخوانه سال بعد چیزیش ارزش میکنه آیا اصول ترخیصی جایی میشونه میشه یا نمیشه؟ این بحث معروفه البته بچه ایده از اخباری ها و ایده از اصولی ها به لحاظ خود بین اصحاب ما قائلا به اینکه اصول ترخیصی مطلقاً جاری میشه مطلقاً من هم در یکی از در آن آن کامپیوتر نگاه کتاب عربعین هست و اون مهم مجلسی که حدود دویز سال پیش شاپ شد تازه شاپ شده نمیدونم حدیث سی شیش اگر آن کامپیتر نگاه کنیم کتاب من مهم مجلسی یا صفحه حدیث سی و شیش سی و پنگ دیر نشمان خیلی اختشان در اونجا در چند کنیم واکرم بود یادو در اونجا در اونجا اون مجلسی با ما سوال الید که چون گفته و حرام اون بدینه پس علم اجمالی منجز نیست میشه اساس اله اساس البراعه در اساس علم اجمالیان جاریه چون بینه وجود بشه چون کلمه بینه آمده، چون شاید تعجب بکنه مثلا براعت یار یا مثلا اساس الطارق بشه از دو طرف مرحوم توی این کتاب اگر که که آنجو که شده شمال حدیث چیز رو برایم نافعه بحث بدی نکردیش این وضعیشون هم ما داریم اخصاص بیشون نداره به نظر من صاحب مزاره که توزه هم الان اجمال صاحب مزاره صاحب, صاحب ماله با وجود علم اجمالی اصول تاریخی رو جاری کن خب طبیعتاً این طور میشه یعنی اقوال هم احتمالاتش این اینطوره. اینکه اصول تاریخی در این که در کل در جاری میشه. این که اصول ترخیصی در یک طرف جایی میشه طرف بگی نمیشه این که اصول ترخیصی اصلا جا نمیشه این سفا باقی این آمادن در تصور ترخیصی ترخیصی هم اقل و نه رو گذاشتن احتمالات چار پشکردن <تصف> روشنگ کن اصول ترخیصی اصلا برای از وجود میبیدن صدقه واجب یا نماز اصل ترخیصی هم برای این در هر دو واجب میشه نه صدقه و این اسمشی رو گذاشتن که والا خودشون جواز مخالفت قطعیه اسمش این چیزیه حالا این اسمایی که ایشون فرمودن خیلی مورد نیست مطلب اساساً فرمودن که اوصن اصول تحقیقی در هر دو طرف جایی میشه اصول تحقیقی در عقد مال لاغین ایجاد میشه چون یکی شیشه میگه ارسالات البراءه از ان وجود صدره اما نماز واجب بخونه یکی چه نخونه میشه بخونه اینم رایه دوم رایه ثوم اعتیاده یا منجزیت علمی شما هر دو رو انجام بدید هم سالغه انجام بدید هم سلام اسمی شده وجوب موافقه قطعیه اصطلاحاًش این میتونه واضحه این ان شاءالله اسمی شده وجوب موافقه قطعیه یکی اسم شده وجوب موافقت احتمالیه یکی اسم شده حرمت مخالفت قطعیه یعنی مخالفت قطعی بگذشه عدم و حرمت مخالفت جواز مخالفت جواز مخالفه مخالفت پس سه تا احتمال در تنجیز علم ایرانی تو مقام ثبوت هست طبعا چون این آیان معتقلن بحث مقام اصحاد و اصیان عقلیه طبیعتا در اصول ما این بحث از دو زاویه نگاه کردن زاویه یک از عقل زاویه دو از نقل و مخام طرق بحث و قدمتونی که این چی جوری شناوران گفتن عقل ممکن است درک خاصی مثلا عقل ممکن است که یک طرف میتونه انجام بده یا عقل ممکن است که هر طرف به نیاز بکنه اما شاید گیا یه طرف کنه چه یه تفکیکی بین عقل و نقل گذاشت به جای تفکیک اقل و نقل از صدقه تغییر کرد مقام ثبوت و امکان از نقل را مقام وقوع و خیریت وقوع این اصطلاحاته پس محدد تصورش بپرمه حالا این اصطلاحات شیلی مزرمه یعنی خیلی مشکلی این کجا شد این مقام سبوت تکلیف بحث دومی که ما داریم که مقام سبوت تکلیف مقام سبوت تکلیف یعنی امتصاد در مقام امتصاد خوب دقیقه کنیم من مثال بزنم و یک کورو ارزو کنم ما به طور طبیعی تو مقام امتصال استاد استادنا شهر من جانان عزمی کنم بعدم که ایشون دارم موجب نرمی دارم من, من تفصیل بیشتری که روشن بشه از ما پنج مرتبه ما پنج جور امتصال داریم یکی امتصال علمی تفصیلی دو حالای مثال میدن و همون مثالا میریم جلوه یکی که روشند بشه پس این در یک اتاقی چهار تا لباس هست میدونم یکیش پاکی ستاش هم نجسه میتونم شاقا باوشن بکنم پاک رو تشریف سدن نجسه هم تشریف رو, رو توی پاک نواست کنم تنجور احتماس تنجور امتصال دارید این نثال ما نثال روشن شد چار فل باسه یکیش پاکی ستاش نجسه راه هم برای تشریف دارم شما روشنه هم میشنون باید پاک, می پاک تشریف سوال اینه همه های امتصال در این کنید یک امتصال علمی تفصیلی یعنی چی؟ یعنی شعاق روشن بکنم به واسه پاک تفصیل رو دو جماز بکنم امتصال علمی تفصیلی روشن شد دو انتصال علمی اجمالی یعنی چی؟ یعنی روشن که چهار تلواز رواز بکنم درخیه یکیش پاک که؟ سفر شمیده که آخرون هم بفردم عیل دارم به نماز خوندم تو تاره لیکن عیل من اجمالیه خودم نماز اول دوم دوم دوم شارم هشتیز نمید سه انتصال زنی تصفیلی مثلا شما روشن نکنم دو نفر آزهی ها دارم برای برای خبر باید در موضوع خارجی یه آزهی ها این دباس پاکه چون بویش به اصلاح شهادت و اخبار عدل وارزی یا عدلی یا بیرون این زنی میشه. اما تفصیلیه یک لباس اولین گواهی اون لباس پاک اینه. من خودم چرا این کار را کردم خروشتش. شخص عدلی یا عدلی شهادت دادن این لباس پاکه. من اگه بخوام چیزی را ازت بکنم میشه انتزاع زنیه تفسیری. اینا بیشتر روشن. چهار امتصال زنی اجمالی دو تا عرض میگن این لباس پاکی دو تا میگن اون لباسی به این دو است من به این دو تا نماز بخونم دو تا نماز بخونم هم جوه بفتن اجمالی این احتیاط یعنی بیش از یک بار. لیکن اجمالش هم باز اینجا زن آغره اگه دفعه بکنیم چون این هم عرض گفت پاکی اون هم عرض گفت پاکی این چند داشون پنج این احت... احتمالی توی یه چشماز می‌خونن بدون عزم و مد بدون نگاه کردن پس ما پنج مرتبه برذارید که این مسأله خیلی واضح شد براتون ما پنج مرتبه از انتصال داریم انتصال علمی تفصیلی انتصال علمی اجمالی انتصال زنی تفصیلی انتصال زنی اجمالی انتصال احتمالی خب این کینا کدومش, کدومش درست سینفته کدومش درست است یک بحثه که ان شاءالله متعرض می‌شیم همین که سال احتمالیه عادتاً درست میشه پرواز خاص بیاد حالا اون حساب دیگه داره عادتاً درست است کجا یکی اینها که جولین درسته یعنی اونم بحثه خاص خودش داره که اینطورن بحث واسه بیاد ولی بیشتر این بحث اضافه برای صحت خود اوپینسه پس یک صحت ببینسه دو درجه بندی این مهمه که رست ببندی مثلا آیا همین ترتیبیش بختم ملاقات استشه اول علمی امتصالی تفسیری دو علمی اجماعی اگر ممکن نشد زنی تفسیری اگر ممکن نشد زنی اجماعی اگر ممکن نشد احتماعی خوب دقیقه این این تلیبست معروف و اصول ما در اینجا هستن اون نقطه فنیش اینه هستن ما و استاد اینجور شهر مردم این شهر در درست خود نقطه فنی طولیت اینها هست خب یه هست که علمی اجمالی با علمی تفصیلی در یک گفتن یعنی چیه ها میتونین چرا روشن کنی. لباس پاک تشریف به نماسو کنین و میتونین در چاکه شماسو کنین اینجا در یک گفتن رت در مقابل نام نموزن نه انتصال علمی اجمالی با عدم تمک کنه از علمی حسیلی اگر شما امکان داره شراغ رو باز بکنه روشن کنید، اگر امکان داره اجمال شکل نداره شراغ روشن کنید شراغ روشن کنید که لباس تاک نواز بکنید چرا چار با نواز بکنید روشن شما پس بست در حقیقت حیقت حالا سه انتصار علمی اجمالی اون بحث دعوی این طولیت این درجه بندیه. مثلا شما ذنیه تفصیلی میتونید انتصاب بکنه خوب دقت امکان اتصال ذنیه تفصیلی دارید میشه علمی اجمالی سوال مثال وارد و وارد کمی در سوالای عملی نمیشه اول سوال عملی میگه مکلف یا موشهد یا مقلد یا مفتاد این یعنی چی؟ یعنی علمی اجمالی در رسوی زنی تفصیلی این که نویسن این مرادشون این؟ که تو چون اشتحار زنی تفصیلیه فهمه میکنم مقام انتصال دید اونجا خود اونجا مکلف بازی که از این کار داشته باشه نه مراد اونجا این مقام انتصال تقلیل خود مقام همه دقیق بکنیم شما روشند شد اشتحان یعنی زنی تفسیری روشند تقلیدن یعنی زنی تفسیری ایتیار که نه علمی اجمالی اینا گفتند علمی اجمالی در رسوه با زنی تفسیری یعنی شما مستهلی راحت کنید به فیلم نگاه بکنید بعدله نگاه بکنید غیره بپنی نه نگاه نکن احتمال در مثال 3 تاست تو جنگ بین احتمال هست نگاه نکن میشه احتمال. چی میشه؟ علمی اجمالی اگر گفتن نگاه بکن پس اینجا سوال اینه سوال رو شد. شما مشهد امکان رجوع بردل براتون هست خیلی راحت که فقط باسه می فهمونی نداره. میگن نه شما دو رد رأی اول مادام تمکن از اشتهاد داریم به امی اجمالی رو نیاریم یعنی به احتیاط رو نیاریم و کتاب نگاه کنه حکم رو بداید انجام بده. یعنی چه احتیاط میکنید سه تا تو مسئله هست هر سر انجام بگیم خب چه که کار دو اگر کسی تغییر صحیح برش مخضوره یعنی واقعا تقرید جامع شرایطی هست و این هم تقریدش مجزید این آقام میتونه راحت از شو تقلید بکنه خوب دقت بکنه میشه تقلید نمیکنه میفهمه در مساله چند تا احتماله و دقت در مساله چند تا احتماله همون احتمال فرض انجام بده تقلید نمیکنه البته احتياط برای مقلد یه براتون کاملا روشنه دو جور احتیاد میشه علمی اجمالی همین مثالی که من زدن. دو بخصوص در مسئله کلا در فقهی چند تا احتماله همون احتمال فرض زنی ائمانی زنی اجمالی میگه من بین این دو تا به این دو تا مشهد عمل می کنم با اینکه میدونه فرضاً یک تقی جامتشاشون یکیه میگه من با رأی اون یکی جمع می سوال اینه آیا از اول بین این دو صورت مخیره یعنی درجه واجده داره سوال. شما ممکن است رسه مراجعه کنید در مراجعه مراجعتون حف علایی دارید؟ نه این کار نمیکنید کار میکنید اختیاط میکنید؟ ممکن است تغییرید بکنه فقیه جامو و شرایتحصییل راحت رسالش نگاه بکنه گ روشن یا میگه نه نمیکنه تعویز نمیکنه. کار میکنه؟ میپرس مستوللات مسله چند تا اون رو انجام میکنید. اگر مستولات انجام داد اسم علمی اجمالی اگر در فقیه واحدی مراجعه کرد اسمش از زنی تفسیری همینجا البته نسبت داره شوالا که اصلا در سال عملی اول شده قبلا نسبت بسید که اصلا جایز نیست یعنی علمی اجمالی با فقد زنی تفسیری رتبه دارن اگر کسی فقیهه باید نگاه کنیدتون نگاه بکنن. کسی مغلدهه مراجعه به فتوای فقیح بکنه اگر فتوای فقیح نبود یا فقیح تشکیف نداره اون بقیه بکنه مثلا به نظر اون فقیح جامعه شاید به این دو نفر اون بقیه احتیاط بکنه اون از اصلی یا فقیح فتوا نداره یا اصلا دستشیر به فقیح نداره لذا یه اصطلاحی او در تابق شیخم امرده عمل العامی بلا و ولا تقلید باطلون این که بگه عمل العامی بلا اشتهادن عمل مفلد مند بلا اشتهادن ولا تقلید باطلون یعنی نوبت به احتیاط یا انتصال علمی اجمالی نمی رسه رسفشون طولیه بله اگر فقیه مراجعه بعد نکرد چیزی پیدا نکرد احتیاط بکنه طبق زوابط خودش اما اگر علی امکان داره مراجعه کنه دیگه جای احتیاج نیست مغلد اگر تقلید صحیح وجود داره جای نیازی نیست که اصلا میکنه نه که باشه نه اصلا میگی همونی که به همونی که هست روشن شد مسئله. پس ما مقام انتصال براتون روشن شد یکی از مثالهای مهم از کدم چون به این شهر ننوشتم من, من یک شنگ وافی. ار کردم که کاملا مسئله باشم پس چي هغا من خودم چې به احتیاطم من م هم اعتقادم همینه که مادام تقریب تقرید ممکن است وجود احتیاط نکنم اما اگر کد نماز عمل درسته اما نکنه تاکید یعنی عقل عقل و خو نمیکنه این کار چون اصلا این احتیاط با وجود راه درست موالده امراض نفسانی و خیلی بعد اتفاقا یه چیزی کنن و خیلی مشکل دیگه ای کرد این وسوسه دیگه چه حالاتی دارن واقعا خودشون زنگی و خودشونو پدرشونو مادرشونو زنگی همه بردم زنگی کن صفحه قانه بان همیم تزریق اولیوکو نه وقت نه عقل انجام می‌ب مسوا آدم قولان واه که خدا بده در اگه تقریب که هست دنبال احتمالات رفتن دنبال احتمالات رفتن روشن نیست کردم حالا از نک خارجه که ان مطلب روشن شد پس یه این اینا که آیا کل واحدین از این 20 ها درست یا نه این بحثی هست لیکن بحث دوم که اساسی اون رتبه بندیه درجه بندیه مثلا میتونی نهاد شراغ روشن بکنه رو بفهم لباس نجیس کدوم یکیه خوب درکه کاملا تشکیز داده خیلی واضح یعنی که با هم ندارد. اما دو نفر عادل آمدن گفتن گفتن لباس پاک اینه میتونه به قول این دو نفر عادل الان اکتفا بکنه با اینکه علم علم میشه. شخصی میشه. در این جزء بحثا هم روشن شد یک بحث عقلی یک بحث نقلی. بحث عقلی دو اینکه آیا شارح تفصیلی کرده مثلا اهل میگه ناخودون شما صاحب آموزه ایی شده بزن مراجعه می‌کنه. فقط عقلی میگه دو آیا شارع در مقابلی موضوع گرفتی یا نگرفته پس تمام این بحثی که در علم اجمال اصلا عنوان بحث علم اجمالی لیکن با این چندی که من خدمتان رو از کردم دائره رو خیلی و واضح شد علمی اجمالی داریم زنی اجمالی داریم علمی تفسیری داریم زنی تفسیری داریم و احتمالی مثلا احتمال خب تبقا قاعده عقل و حکم نمی کنه مگر موارد منصوصه ای شرط مثلا این امتصال احتمالیه اگر راهی فیدانه کرد به یک جرد نماز رو کن باز خب فتحای مشکل اینکه به شهار جرد نماز رو کن. این علمی اجمالیه اونا اینکه گفتن به شهار جرد ادهشون اکیلا برگشتن به سه جرد نه این نهی که خوبها ها برگشتن تو فکر، تو جریان فکر نه که یک فقیه الان این بحث مثایی که دجهد کافیه چون ما بین مشغل مغرب قبلتو لازم زاویه قائمه بشه همین که ما بین مکرب به دجهد هم حاصل میشه لازم کافیه این که بحث قدرت من نمیخوام وارد بشم پس اگر کسی گفت به یک طرف از بخونه یعنی اینجا سال احتمالی کافی؟ اگر گفت به چهار گاردیا به دجهد یعنی انتصال علمی شمالی مثال ها بکنید بحث ما الان در بحث عامه خصوص قبل روایت بشتون اون بحث دیگریه درقص میکنیم خصوص یک باب روایت بشتون بشتون بحث دیگریه الان بحث ما به طور عامه در بحث عام انتصاب احتمالی خیلی آسن ازش نداره و اگر این یعنی که میگون نیش ممکنه تو آخرش شده احتمالی با حکمه ارم احتفاق با پونم روشنه حالا به هر وقت من و پس بحث ما در علم اجمالی اینشالله تالا واضح شد در علم اجمالی تو مقام امتصال با توسعش واضح شد علمی تفصیلی علمی اجمالی و مهمش اون نقطه اساسیش اینه مثلا تا قبل شیخ انصاری مشهور بود با تمکن از زنی تفصیلی علمی اجمالی انجام نداره اگر فقیه مراجعه کنه مقلد مراجعه کنه احتیاط نکنه مگر خود افتیار مراجعه گیر بکنه و افتیار بکنه افتیار بعد از نبوده زنی خصیبی این وقتی که انشاءالله تا حالا متعدد میشه این وقت تمام شد یه توضیح دیگه را به خود این مجموعی سفر برکت میکنن اصلا الله